و تا اینجا اگر خود جیهت زن میبانه روزو مطابعت کشه چون گاهی اون تبدیلی که خود جیهت رو معرض یک میگیرم این روزو مطابعت در کلماتی بیشان منشش این است که شما برد تریدیت ذاتی است کاشبیت ذاتی است با حصول قرد چون اقلم بکم می که بارد تسنه ای داشته باشیم و بشه و قانون بشه با وجود زن یک حکم تنجیبی از عرض یا به روزو مطارن خب یعنی با تحبیر متعالق ما اصلا عرض حکم میکنه کنه اداره جامنه افراد مرتزم به اجرای قانون بشه این حکمه افراد برای احضاره هر چه قانون جعل کرد کسی مجزه از پارنامان دیگران این باید اجرا بشه افراد باید بنا بزرگ دارن بناشون این باشه که قانون اجرا بشه عقل که موران به اینجا عقل احملی است این رو برای احضاره چامعه لازم بتونیم از طرف دیگه اگر حق پیدا کرد که قانون چین چیزی رو خواسته در اینجا باز عقل رو بکنه که خوباید م اون این با قطع تو قانون این اون حکم عقلی که بنابرای دار به اطاعت و قانون دارد تبریه از قانون و تصویر قانون اون حکم عقلی هم به اصطلاع در میان میام و از حکم تنجیزی داره که شما مطابقت بکنید به خاطر این که اون حسن اطاعت در اینجا محقق باشه این خلاصه یک تفصیلی که مرضونهای ارافی داره ارز شد که ایشان نقطه رو همین بودن که این گذورا متابعن یکی حکم تنجیبی هست یکی حقا رو گفت اگر قصد پیدا کردیم که با این کار مثلا حرام مرزاده که خود چاره اجازه بده اینجا تناقض لازم میه مطمومه با حق اراغی بخواستن این مطمومه که تناقض لازم نمیاد. چرا؟ چون نکته دیگر که شما اون حکم را تنجیبید بگونی یا تحلیقی نکته اینه اصل بور نکته اینه اگر تحلیقی دونستید من از این بودشه شما عیل دارید به حرمت گوشت خرگوشت لیکن شاره میتونه بگه حالا که عیل دارید، شما بایدش اجتناب نکنید. چون این حکم قبل از عیل و بعد از عیل درست به حکمه چرا؟ چون متابعه فقط تعلیقی شایعه میتونه نحی بکنه وقتی متابعه تعلیهی شد خب بیرونه ازیاد بوده همه رفت پس نکته این که اگر تناقض هم ببینیم باید حکمه عرض رو در اینجا تنجیزی بزنیم اگر حکمه عرض رو تنجیزی دیم خب تناقضه چون شما این لحمه بوشت خربوش حرامه حکمه عرض رو تمام تو تا این فلاکلیم بوده اشتناب مشالش کرده تو بگید ترخیص داده بگید بخواد پس ایشان نکته رو این میدونند که آیا این حکم تعلیقی یا تنجیز و همچنین اگر میگی ایشان بله اگر مقصود مناقضت جواز بوشت فرگوش با اون حرمت این اشکالش اینه و امکانن مقصود مناقضت و معلق حکم عقلی اگر مقصود این که این ترخیص با حکم اعلی منافذ نه با خود حکم شاره اون وقت این جوابش اینه که اون حکم هم منظور اینه که حکم تعلیقی، تنجیزی نیست و منافذ منافذونه. بهزای ایشان نکته اساسی رو تعلیقی بودن و تنجیبی بودن حکم اعلی به لزوم متابعت. البته دیروز گفتید ایشان لزوم متابعت با حسن تا اگر این کار مقرره یا خودو ایشان بوده این دو رو پشت سر هم آوردن. در همون صفحه هست حکم عقل تنجیزی به وجوب مطابقه و حسن طاعت حسن طاعت رو با وجوب مطابعه حکم تنجیزی عقل گرفتن یه مشکلی هم به اسم تفضل مطرح کردن که یا آقا اون بخشش به شما جواب و طول میکرده چه فایده هم نداره ایشان آخر کلام نیتون خلق عمدتو مثل من امکان مجیع رده چرا شارعه نمیتونه نهی معنی بکنه از متابقه از اقلقه اثبات و تنجیزی یه حکم العب اثبات بکنی که این حکم العب و تنجیزیست خب راه این چیه و یک چیفی اثباتی مازر کرناه منع به وجدان وجدان به پرین دلیل هست و از این که این حکم مهمه تنجیزیست از کنم ظاهرن حالا یا کاره از مقرر سازه شده است فکر بیشان زاهره چیزی شده خلقی شده بین دو چیز. یکی حسن تا هر این حسن تا هر حکم تنجیزی اقل راسته اقل عملی حکمی کنه که انسان باید حوانی رو انجام بده برای اینکه اداره جامعه اداره بشه، باشید این راسته این یکی حسن تا هر حکم تنجیزی عمل اما لزوم متابعت قرض از وجه حکم این اول ک اینکه اگر انسان قرط فیدار کرد حتماً باید متاقعت بکنه و تبقه اون قرط عمل بکنه این از کجا؟ این اولی کلام ایشون بیفنون و از اجزان کار دنیم کجا شایده برای ما؟ این رو باید اثبات بکنه این رو باید اثبات بکنه که این حکم عمل اولاً باید اثبات بکنه که این حکم عبل. اون اطاعت حکم عمله چه این اداره جامعه د اون واضحه هر انسانی که میخواد در این مجموعی زندگی کنه باز اون خوامین حاکم بر مجموعه رو انجام بده و مجموع تلاشید که حسن طاعت حکم عقلی یعنی عقل عملی که به اصطلاح آقایان بر میگذه به سه چیز یکی اخلاق یکی تدویر منزل یکی سیاست و مدن این جز سیاست و مدنه حسن طاعت جز سیاست و مدنه اون قسمت آفرش این درست کنیم حضرت سعید، حضرت حالا چون مرحوم به اسپانی اسپانیی مقدار راجع به اینجا صحبا دیدن در ایشان یه مقدار توضیح بیشتری خواهد. این مطلب درست. به بکنیم؟ اما اینکه اگر من احطا از کردم حالا ترست کنم اصلا مرنا اینها از غیر طریق متعارند نه از پیدا کردم که چیزی قرار داده نه این که از روزناهای مجلسی به باشن نه اینکه از استاندار مثلا مقام رکسونیش باید پیدا ایشون میگه باز ها به عقل و میکنه گلوزو و مطابعت این چرا ایز راه کنه کلابی می کنه نا به قصه چون میگه هم میگه این قانون آقا که قانون هست حسن ساعت هست بله حسن ساعت رب دیگه اما اینکه که ساعت این مطابعت اخ من باشه چرا؟ بله یک نکته دیگه هست اونی که بنای و اقلا بر این هست این مطلبون بنای و اقلا یک چیزه خب نه امون چیز دیگریه اصلا توی یک مسئله قطع و حالات ادراکی یه کاری نداره جاز احکام و اقل حملی نیست در اونجا میتونن اقل فقط کشف بکنه اصلا کشف بکنه اقل قطعه تو چند مسابقه با واقعه چند درستا مسابقه با واقعه با نایی که میشه عقل نظری این رفتی به عمل عملی نداره پس نکته اساسی در مناقشه با محقق اراقی اینه که این اصراح داره حکم العقل از تنجیزی این حکم العقل تنجیزی هستم در این صفحه که بحث چیز رو عبردن اما در صفحه سابقه تصریح میکنه کنم آخر صفح لحکم العقل تنجیزی به وجوب مطابعه و حسن طاعت این <تصفيق> <تصفيق> در بچه‌م باندې حرف کرد، کارا خراب گجا. حسن و طاعت حکم عقل را راز... اونم چرا چون جامعه باید اداره بشه؟ یا مثلا در شریعت مقدس، روابطی که خدا معین کرده مثلا انجام بده، طبق شریعت مقدس حسن طاعت معنی نداره. انسان واسه طاعت از خود هر کاری بکنه. چون هر نه تمام روابطی در زندگی فردی و اجتماعی ما معین فرموده. ما باید انجام گیم وصلت طاعت او اما من یقین پیدا کردم و بدون این که مثلا پرسونی روایت می باشه یا آیهی باشه مثلا به این عرض عریضی که اینها دارن مثل مسئله قطع, قطع من یقین پیدا کردم که صدق دادن در اول ماه هم مثلا واجبه دلیل نداریم روایت نداریم اما من یقین دارم برزمینا ملاقات شریعت دست من روح شریعت دسته من با روح شریعت پرداریم این دادن رو پرس پیدا کرد این که آیا عرض ح سوال اینه پس مثلا عادی یه چیزه وجوب متابعت چیز, چیز دیگری آیا در اینجا عقل حکم میکنه یا در اینجا اهنا حکم می‌کنه یعنی بنای عقلا این است که تکالیف و قانون یک مرحله مهمش تنجز در مرحله تنجز اگر افراد فرض ایجاد بکنن چون از هر چیزی نیست اغلا برام شنیه شده برای حضرت جامعه این قرض اعتماد رو این معنای اول اغلا بناد تس بنای اغلا داری محکم عرض اون خلقی که در کلمات محقیقه ارادی شده منشه خلق این نکته هست روشن شد این راجع به کلام ایشان و یکی در اثبات این که حکم تنجیزی داری مادر کرنا منر وجدان و عبادی به در ارتکاز ان امکان مجیع رد ان عمل به قطعه لکونی که ترخیصم این از شعاره محصیه و ترک تایر اینو همش همینه میگه اینکه اگر شما علم پیدا کردید به وجود صدقه معضاله شعاره بگید علم واجبه اتباه نید خب معلومی چیه شعاره اجازه محصیه داره کجوریسی جازه محصیه شعاره گفتی این قد اطور مرحص نید منجز نید اینکه اجازه محصیه هم نده باشی جا خب من یعنی دار از راه های مختلف یعنی پیدا می کنند گایی از اسباب زریف یعنی پیدا می ده. خیلی جا خیلی هاییم دیدیم که یعنی ما مطارقه با واقع نیست خب اگر شای آمد ترموند که تو اگر از راه کتا و سنت اجماع و اجماع علمای شیعه و تقریر سعیه علم پیدا کردید درست و اله چه مجگل بگه؟ این ترکیزی در محصد ازام میشه؟ در عیفت شاهر با حالی که تنجز نیم داره. محصیت فرق تنجزه. بنده چرا را نهارز کردن. محصیت این است که حفلی رو که بر ما شده انجام ندید. این توش محصیت مید. حفلی رو که بر ما شده اون رو انجام ندید. این میشه محصیت. اگر شاهر آمد گفت بکنید خط ادعه میگه قرط بنا سر خصوش شد. سر رضا خصوش از که یاو استفسار و استفاره و من استفاره خیلی مجربه قد دارم استفاره درسته قد کردم پیدا کردم که این اول ما صرف واجب استفاره اینو شده وجودی بحث علی این گندنی میشه اگر می‌خویم باش بحث بکنیم یه در مقدمات خطش بحث بکنیم دیگه تو بیخود بحثoze که چرا از استفاره قرضوزه که چرا مثلا فال و خا و اینجور چیزا بحث یه مناقشه بکنید در مقدمات خطش اون جوابشون اینه ما شما که مشکل نه اگه قطع اصم باشه قطع بی خود قالوه نا وجد نا آبا نا علا و ما زیدیمون چون پدرمون ما هم کارنچه هم دیدیم که وجد ندیم از رجلان که بالاقتر قطع پدر نمیشه میفره خب پدرشون کار اشتبات میگه خب خب پدرشون کار اشتبات میگه کی کم بالا آبا روشون بیرده در یه نهای داره که امام به نفر میگه که قصدی هيك جوش کوچیکه تمام برام اون شده که به منزه روزخه هرگز اونجا رو این منزه رو ساختن مطلقاً نفرضش ساخت که دارن منزه رو تایید کی چنین باشه ناگهان پیار منزه رو تایید انجام بده خیلی خالص راحت باش این که انسان بیاد بگه من تحت هستم من حالا برکار زم رفت جه بزرگی من من تو اونجا یادو پدرم بود چقدر خوب بود یادو پدرم لیکن کردم کرد نه نه بر نمیگه حالت وجدانیش میمونه عمل نمی کنه حالت وجدانیش هم حالت وجدانیش که منافضون قال نشده نکره اللہ های عالمون نکره این منافات منده به لحظ میگرد به زاره را بودیم قرد داریم یعنید داریم نهلا بگر در واقع اون واقعیت خودشون محبوظی بوده قرد ازا به هر حال من سر این قدمته و من در این جلسه و در این جلسه با, با سوزیه عرض می کنم ایشون میگه ارتکاز ما اینه چون مناقضه لازم میگه ترشیص در معصیت ما هم ارتکاز باید ترشیص در معصیتی نیست بخصه در صحبوت منجز و عدم منجزه بخصه در پنجز و عدم پنجزه مغربه ما خب میتونه که آقا اینجور اینجو جا نه اینکه میتونه بگه اصلا بنای آقل آورینه هرکما اینه که اصلا بنای آقل آورینه این صحبت ما این. و به عبارت <تصفح> عبارت دیگه <تصفح> محومه آزی هایده که مسئله دارن که همه انه آنها بیگن تو مرحله تنجدون دیگه عمر از دست شارع خارجه اون میداری که عمر ادراک قرد این میکنه دیگه شارعه اینجور تسار رو بکنه این وقتی ما در, در مبارس سارعه رو اندکنم احکام خود این شایی واقعیت بیشتر این حیرت بیشتر نیست اما سه تا مبادی این شارعه مبادی جهن یکی ملاقات یکی حبوب یکی ارادت از کرد این سه و جمع کلن در اختیار اشاره مثل کلی این مرامه در اشتیار. ما از ملاقات خبر نداریم حب و بوز بشاره این شاهده شد یکی از مسئله به اصطلاح فعیلیت به اصطلاح ما از که در فعیلیت اختلاف به اصطلاح هست فعیلیت یعنی انزال کتب ارسال رسول یا به اصطلاح نوز ما قانون رسانهی کردن این رسی خیلی خیلیه این هم در اختیار شاوره مرتبه بعدی تنجزه که الان داریم بخش بکنیم مرتبه بردی هم انتصاله این آخری مرتبه انتصاله مثلا بنای ازها به ما برین شده الان همان انتصال کلن در اختیار متلفه رفتی به شاوره و مسائل مسئله مثل مقدمه واجهه بینید توی کردن همه رو بشه اگر زده مسئله اجتماع نه تمام رو این نقطه اتماعاتن حل کردن که مقام امتصال جرسیار عبد حالا سوال اینه توی مرحله تنجز و از مرحله تنجز هم جرسیار عبد مولا این جرسکاری اینجا رو بکنه کن اینا مثلا دیگن در مرحله خرص اینطور یه خرص که آمد شون به اج مولا هم در کارین اینجا رو سوال سؤال اینجا هست این طلب دیگر مستده آیا در یک مرتبه تنجه که با فرق باشه سوال؟ دیگه امر مولا تمام شد. ست در ست در اختیار حقه معلوم آزم ها این رو بگیم اون کسانه که مثل صاحب رسول عرض کردن فقط از شیخ انسالی مثل و, و بعد از شیخ انسالی مثل معقیده اصفهانی اونا به خواهد میگن نه حتی توی قط هم مولاد میشن دستایی بکنه صد درست در یک درست بنای اغلاست که قط رو حجت میدونن لکن اولا این بنا قطع طریقی صرف نیست یعنی قید بشه. قیود بشنیست ثانی هم حکمه بنای عملی دازه اغلا اونم به خاطر تکسیل در قطعه همون کسیل عمول، اداره اجتماع، اقتلال پیش نیا جامعه روش بکنه رو چون اگر بنا بشه افراز رو بگه شما اصلا باید حتما به قطع زمانت می تجربه و آزمایش و خطا با آزمان و خطا انجام دهید تا برسیدیم که این این واقع قطعه هم اشتباه نبوده این زندگی رو برمیزن اختلال نظام بازمید روشند پس این نکته آن در اینجا در کلمات آزیا این مرحله از اختیار ف یا در این مرتبه فنجد هم قانونگذار میتونه تأثیر ببانه طبق تصور آلام سهر در سیار میکرده چون ایشون به حکم تنجیبی عقل تو تنجیبی عقل شد قانونگذار اصلا نیتونه در مثلا از کار نداره ایشون موقع این راهی که معین کرده، میگه زن باشه، زن نهاره. میگه هر زن زندم براتون اراده انجام بده. خب اونم کامل اشاره کنم، معنی نقد و ام صادراتی که خب همین ایشون میگه اصلا بحث اوغلا بدون عقل واقع میکنه اون دایره که شما گفتید شد اوغلا. این دیگه دایره ماهر تعریف نمیشه میگن عقل حکم می‌کنه به لزوم در این بلزوم متواضع. روشن شد؟ پس این راه دیگر نکته. دیگر خودم من با تون ترک که نه چون یه ایجادون گفته چون اعتراف نه اون معتبر نبوده از این راهوارد شد. اگر تأثیر چیزی مثل باور مات موش خردش رو لکه در حالت تف اون ورمات رو می‌بینی، به گفتن توجه نداری. چون ورمات رو می‌بینی و خریدی و درد داری، پس ما مکرری باید ورمان اعمال کنیم. یشتر حذی راهوارد شد. در اونجا اشکال آذیار اکنونی. که درست با واقع رو می‌بینیم اما واقع از راه صفت در... اشکال کنیم لذا خانجوزا شون روزو متابعا بر واقع بر صورتی که مرعادیت از واقع داره صورت به واقع این مطلب رو ایشون در حاشیه‌شون بر طبقات نهایی خولی بگی اینجا نمی‌کنه خصوص یک صفحه بالان گیره همون مطلب اینجا آورده که بخاطر مضمون را این رد بکنن در اصل در آخرش داره که ای نداله که به نصبت الالاعمال المترتبت و اما آثار و شرعیه که شرم مثلا فلخم فدا به الان مترتبتن علا نفس اناوین موضوعاتها به وجود واقعی خیلی حضیر و از برای واضی که ببیگه شخصه رد کنه آخرش مکرمون قبول رد کنه از مرمون ناینی اینجا مطلب نانیه اینه که شما از قصد فیدار کردیم به حرمت گوشت خرگوش اینجا فقط واقعه اینجا ما حرمت گوشت خرگوشیم بیدیم اصلا به قصد نظر نداریم چون از داتی. و نظر شما با ترکش خود من ما... این مناقشات ما با و خیلی مدانوقعی میشه. خودی هیچا که مناقش فرگوش آخرش قبول بعد با آثار شرعی از وقت مرموم هم آثار شرگی و غیر شرگی میگه فرم نه وقتی شما واقع رو دیگید دوباره واقع هستیم ایشون نسبت به آثار شرگی قبول کرد کلام نایی رو هیچ فرقی نمیدار آثاری که در موقع خودش و اغلا برای موضوعات واقعی هستن واقع پیدا میشه فوقش مرموم آزده هم هم نه آثار شرگی مترسپ میشه آثار غیر شرقی نمیشه. و این رو باید به یک نتیفنیه دیگری برش بیان میکنه که بیان میکنه بعد جهت ثانیه بعد این جهت ثانیه بس من از کردم شیخ بعد از اون عباردی که اول آوردن ترمیدن که لایت لغای حجت در در کلام شیخ هم عنوان حجت است در همه ها شرعان کلام شیخ مسته برمانی دیگر هم مرادش از حجت مصطلح منطقی بذره بحث دیگه‌ای هم واسه کیو نظر یا پاییدم تازه حالا داره حال تا آیا برعکس حجت بعنوان منکرگو serviceable بعد معلومه شیخ سرش هم گسله میشه خب ما اونایی همون عزاد آزیان هم نه اینکه شیخ در سرو برق زن معتبر یا معجزه اماره می شه حجت رو چون مثل حالا معلومه خدیه روزان اخیر جوشا نه نا این اونجا اشتباه فهموند که حتی بر اون هم بخشه نمیشه سر ریداری برای اون هم بخشه اون قیاس نیست قیاس قراره ارخه باشه اونجا ارخه نداره به جرد اینا برد اونجا من اینو، من اون مغازی هم همون مسئله ناینی رو پیگیری میکنه یه اشکالی هم به ناینی بکنه خلاصه حرف مغازی هم اینه که اگر مضمون خمریه یک تفصیلیشون از احکام داره. تطبیق تفسیری که شما دیدید ممکن از اونجا هم در قرار بگیری که خب واقعا هم خوندن مطالب هم تو تفسیر وقت داره و همینش مطالب ایشان به تحریر دفتر ان در بحث جمع این حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد ما اونجا ان شاءالله مطرحش می‌شیم دو و خود این مطلب اینکه شما جو به احکام وزاری فرستادن درست نمی‌خینن که خیلی وقت عاریو فعلا بی وقت این کار نمی‌دیم در هر حال ایشان در صفحه نو به بعد بعد آمدن در اینجا این بحث رو مدرح کردن که آیا صدق و جد اولا به اصطلاح منطقی و بعد به اصطلاح اصولی بر او میکنه یا نه آیا بعد ایتون فرمدن نه صدق و جد میسته کلام شیخ مرمون چیز بعد در ایشون در ومنهاد بعد این صحت اطلاق الهجه به معناه مراد ایشون اطلاق مصطلح احلمان و این به آخر میتونیم کنیم در طور دیگه و اقلقا قاطعی یه طور العوض خب دادن چه طولانی بزنیم حجت اگر چنین می ماند هجت شه حجت اگر خاطر عذر بر خاطر است اگر در از مجلسی صدور منطقی حد لزمت چون در اونجا اون بحثی کردن که در صدور بیاره منطقی ها هر از دل و باز باز باز باز این حجت در دلیل و برهان باز دیگه بحث موضوعی بحث نمی کنه قابل نشه یعنی که خیلی به نتیجه درست اونجا نمی جایی است اون حجت ها که مرحوم شیخ حد باز اشکالی دهن که بعض از منطقی ها مجموعه مرکتر رو حجت میدن نه حد روز هست حالا برمار اون بحث از یه بازی کردن دنبال اون بحث ده همه از اصول خارجه همه از معبول خارجه <تصفيق> اونجه ایشان اگر دنبال این بحث میرفتن که قاطعیت از عوض قاطعیت از اگر قطع مهنه حجت این باشه به قطع بخته باشه باز ایشون در آخر این کلام خودشون و من تعمل فی ما ذکرنا و هر لکه ان ادم و صدق اطلاق الهجت فی باب الادلت علیه ایزه وقتی میگیم خبر واقع هجته وقتی میگیم اجماع مثلا بین این ترتیب هجته زواهر هجته این هجت هم باز به قطعا صدق نمی چرا؟ لانه الهجه فی باب الادلت عبارتان انطرق و الامارات الواقع وسطن لإثبات احکار متعلقات مثلا خبر بازد آمد که لحمه احمره ترامه این احکام مرادش برومد که متعلقاتش هم مرادش لحمه احمره مراد اصطلاقش رو به حسب جعل شرعی هر دقت قصد بکنه هرچی که اصباق احکام متعلقاتش رو بکنه بیدیم خیلی اصباق بکنه به جعل شرعی این میشه حجت در حصول به ایشان شاید حتی اثبات میکنه و این میکنه خب. عینش لكن جهل شرعی نداره اما وقتی که متعدل باشه اون دست طلب اون باید باید خب میشه ببینید دقت بکنید صبرش میشه ارکان این جزء طبیعت رو چی حکم می‌کنه؟ لازم باشه که عمل اگر قهریه ایشان اشکالش اینه که اسلجت اصولی امنیشه گفت چرا چون در حوزه اصولی هر چیزی که طریق از راه اثبات احکام متعله باشه به جهل شرعی ایشون هم حجیت قسر و علو و مساوات عقلی خب نمیشه حالا به این آیه بزرگواری اینطور ببینیم که اصولا باعث اونجا هر چیزی که موجب تجلید بشه حالا اینی که موجب تجلید بشه یه چیزی است که بیگ امنه و اوقرا هست قبول کردن شارمو رو ایجاد کردنش یه چیزیه خواسته خاصی قرار می‌ده ولی چه مشکل داره خیلی راحت ده بینه هوجا هر چیزی که سبب تجلید یکی از اهکام بشه حالا موقع گفتن بعدی باشه تکلیفی باشه که خاطر این سبر و این تیگه برستاد تربیه به تنجیز بعضی هاش و شاره هم حالا به تربیه محفظ کنشون و ایسان و یا به عنوانی که شاره همیزار کرد کار برای این تبیارست شاره هم همیزار ازداد اون اسمش خطه هست خطه هم خجیتش خجیت اغلایی به جهر ذاتی نیست یا نه خود اون قانون که استدار میشین بودشون جهر شدید یا اون قانون او رو قرار داده پس بجرد دائما قرار دادیه جردیه یکی جرد و غلا داده یکی جرد داده عدل و اماراتی بحث عدل و اماراتی نیست اصلا صورت عدل و اماراتی نیست بحث تا منجده بعضی از حالات ادراکی مکنده منجزه. اون حالاتی که اسمش است. لیکن به شرطی که 90 درصد اصباب و حصول قبل این باشه 90 درصدش قبل اون باشه از خواب و استفاره و و استرلاب و قریدنی طلاق قصد بزنه شد همیشه جهر داره بله باز برگردیم به اما حق بیروز خودمون من باز تکرار عرض میکنم. وقتی که انسان قرط یک چیزی پیدا میکنه یه حالاتی به لحاظ خود قرط در انسان میان مثلا یک صفت نفسانی در این در خاطر این صفت باشه خود جید اینو نگرسن دو سکون و آرامش نفس سه کاشفیت از واقع چهار انتشاف واقع پن جریه عملی و تقریب اینه نیاز نکاتیست که از خود قرط میاد ما هر پیدا می کنیم مثلا فلسان در اینجا هش هست قبل این خط اون این تصمیم ها رو می کنیم حالات برای ما پیدا می این نمال کلام اگر ما حجت رو به قبل بکنیم به قبل بگیم به چی نور پیداییم یک به خاطر وجود این نکار دو به خاطر یک مدلی خارج از این نکار کسانی که سعی کردن ذاتی بگیرن دنبال این نخاط رفتن مثلا ازده نگاه کردن ذاتن،, ذاتن و واقع قرد تریبیت داره ذاتش هسته نهی که ذاتی شد ذاتشه کشف ذات بگه حالا که این در تشت آمد اون حجییت هم دنبال هم میگی. طبعا این حجییت به معنای جعل شرقی نیست دیگه طبعا این حجیت منعنی حد درسته نیست اسم این حجیت رو جهه حجیت داری بزن قاطعیت و عضو هم میدارن لزوم مطابع مطابع, مطابع. پس یک بحث اینه بحث دیگه اینه که این صفحه در درد هست ما ممکن مثلا حجیت و دقیقا به لحاظ به اصطدا نقطهی خارج از این نکات بدونه یعنی نه به خاطر اینکه چون این نکان همه حالات فردی انسانن نه حالات فردی مطلب یا شرم ما بیمه هجیت رو از یک ملیار اجتماعی نگاه بکنیم از سرد و خسادس فردیش خارج بشیم در خسیصه اجتماعی ما بیمه بیمه قهط رو چون این خسلت ها رو داره این کافی باشه برای هجیت چون این خطر داره با قیودی به خودتون میزنه این کافی باشه چون اگر این نباشه اختلال نظام داره میاد از داخلی نکات داخلی منشاء شد ببینید نکات داخلی نکات شد ها فرضش اینه اون نکات داخلی کردن حالا بعد از حتما فقط یه چفت باشه یا جزایر جریانی ممکنه مثلا جریانی نکنه اون نکات داخلیش مختلفه و اون نکاتش تا نکات پیگانشی حکم عقل نمیاده مثلا تا قرط نباشه کشت نیست اما در نکات خارجی خیلی کار به این سفات نداره چون سیر و اغلایی همینجوره سیر و اغلایی عبارت از تطویق احکام عقل عملی لیکن در از جاها تسامح دارند فهمدش هم اینه؟ تری اوغلا واقعا خلاف احکام قامعقلی نیست که لكن در احکام قامعقلی باید موضوع کاملا دقیق و روشن باشه در تری اوغلا یه مقدار تساهم میکنن در نمای موضوع در نمای موضوع شناخت موضوع خصوصیات یک مقدار تساهم میکنن این فرق بین تری اوغلا و توطن عقل است بدون تری اوغلا که دچار وقغر میشید حتی اگر ما اینو رو گرفتیم روی حکم عقل یہ جناچی مینده اگر برسیم اون سیره او میگه آقا بسیار قبول دارم اینجا برای شما از یک طریقه تا اصلا مثلا سد درسدی نیست او قداری، ده در درسد، من خیلی قبول بیسن او قدار ولکه چون شما به درسد شما رو قبول تسامح میکنه یک مقداری در سیره او چرا چون نظرش اداره جامعه هست؟ ها چون حضور از او واضح نمی نمیبینه اون حضور کسیر داره اما تمام علمی که خواب این رو حرف تمامون حرفم میبینه این هم راجع به یه دسته دیگر کلمات آزیا بعد ایشون راجع به معنای حجیت و ترسیم کش سه تا در معنای حجیت سه تا احتمال یه بحث بسیار چولادی فرمزن که این بحث دیگه کنیم با مقام ناییز اختلاف اینشان با مرموانیانی که این بحث خیلی از آن در مانند تأثیر نده تا اینجا مرموانی مرموانی آزیا خونده شد ایشون نظر مقارکش کلاتش اینه که با جیت به معنای لزوغ متابعت ذاتیه و این نتیجه ای اون تریفیت ذاتیه و اشکالشان مرموان ناییی این است که شما این رو به اطلاع به خاطر آثار واقع گرفتی؟ نه آثار صورت ذهنی مرسی که فانی هم در واقع بلا آثار شرعی رو از اون واقع گرفت بروازی ها لسر این دوزمون مطابعه رویشون دو حکم تنجیزی عقل میدونه تمام راهی که تو خلاصش خلاسش اینه اگر این حکم عقل تنجیزی باشه این مطالب ثابته اگر این حکم عقل تعلیقی باشه نه تمام البته. آسان اگر می‌خواهیم بکنیم، از نام ایشون یه اما تنجیب رسته رو ای رو این صورت این ذهنی، صورت کلیکی که فانیه در واقع ما هست این اثری هست اما در هنگام اثبات من چه می‌گوام؟ فرآیند اثبات می‌گه قاعده تا یه کاری باشه. این که تو قاعده می‌تونه، در زن محتدا، در اماره محتدا. اون وجودی که دیده میشه، اون استوره تجویده که من وجودی برای این اثره دیگه. اون یک ادعای دیگه، اینکه اگه ادل کنه جاه حدا در اماره همون مقصد تحقیره. اصلا مستند بر دیگه. نه، یعنی اون نظر می‌کنه چون ذنی اماره قوی‌تر برای باز ماخذ ترخیص میگن ما رو این زن معامله واقع نمی‌کنیم حالا اون چیزی ترخیص میشه که خودش اونم باز به خاطر ترخیص یعنی شما اگر رفتین پیش قاضی اختلاف داشتین قاضی حکم میکنه این عوا مال شماست مال اون اون من عوا اون که میگم من قرض ندارم باز میشه تو میگه نه باز دارم میگردم تا قرض بذارم میرم پیش قاضی دیگه باز باز میگن اگه قاضی حجت جامعه بهن میخوره فلسفه وجود در دوره رفت اختلاف چون اختلاف موزه بر جامعه موزه بحث و حساب بود اختلاف موزه وقت قزاوات چون اختلاف یک اختلاف یعنی موضوعیه سر. اونجا موضوعیه خب هم دیگه ببین شما حجیت قول قاضی در بالاترین سطح نمی گیرین. در نه. اگر در جامعه ما به طرز که در قانون، من معقف پیدا کردم، روش حساب نکنه، خب واقعاً چون با تو کار این کار ذلعی رو بتونیم مرتب بریم سوال جواب بکنیم. اعتراض نشون بذیم. علاوه و که این غصب نظر ما معیار و اوغراگی داره. آقای های مطلقه هستند. شما حکم عقلی جنسد مطلقه هستند. ما اینه که در این مراحل از قانون عقل عملی، سیاست مدن اصلا در مرحله ادرافات شخصی حقم عقل نمیاد. اگر نفت به نروق علاییه. این اختلاف رو رایی در اصل حسن تا حقم عقل شما اگر میخواید جامعه روش میکنه با منجام انجام متابعه به قانون در شما مقعیت بشید به مطاحت قانون این حکم ل تو جامعه قانون نباشه فاعتی نباشه جامعه به هم اما حالا که ادراکی منم اهل ح بکنه این اوق دخک میکنم ارز این اطلاع ادرااج وجود اصلا ادراک رو نگاه نمیکنه یعنی اون عرضز یا اصلا محدوزی رو ح اون محضوده حکم عمل نیست که بیان حالات ادراکی رو نگاه بکنه محضوده حکم عمل یه قانون برای ادار جامعه ضروریه و افراد هم باید قانون انجام دادن تو مقام اثبات عقل نمیاد تو مقام اثبات عمل حکم نمی به وضوح آمد این وجود حکم نمیده. خب بیا تا تاکید داره. اجازه بدید حرف من اینه که این حجیت این جزء احکام عملی و نظری نیستند. شاید چراییش بود مشکل چون این مربوط به اون اونی که مربوط بهونه اداره جامعه. نه ما ناسم رتبی نداره یعنی. حالات ادراکی من رو عقل نمیتونه حکم بکنه اونی که حکم عقل میکنه که جامعه باید اداره داشته کلیه این نه اصلا رتبی اصلا تو مقام اون نیست ناظر نیست به ادراکات من چون حکم عقل اصولا بر اساس بر اساس حالا یا حسن عقل و به ظلمی که مشهور بین قدماست یا بر اساس لزوم استکماله هر کلمه‌ای که ما فرض بکنیم عقل میگه اونی که جامعه روش میده و کمال میده وجود نداره اونی که جامعه روش میده ابراز مغایر با قانون بشه من با شما موافق نیستم چه چیز قرار انجیزی می کنم من میگم در مقام تجیض تا لا لا لا بخوا شما تکرار میکنید ببینید یکاعت بکنید من دارم این اینو عرض میکنم اصل مرحله اثبات تعبیر شما یا مرحله تند جزوه ادراکات حالت سردی این ادراکات سردی اصلا در محدوده حکم نیست این شما ایش شما حضر یا یا شما یا ببینید شما حکم رو چی میدونید حکم و لزوم کمال در زندگی بشری اجازه بدین اجازه بدین اجازه, بدی. اجازه بدی. این حکم عقل که به لزوم استقامه یا به حسن این میر رو عنوان اطاعت و قانون مسابقت قرار آیا میر رو تنجج قرارمون عقل رو استعمال میدونه وابسته به خود قانون ای بابا میگن حکم عقل اینجا عقل از اون حکم میکنه یعنی این یه کلمه همون میگه اگر شما ادرافتاتون اینطور بود جزء کمالات شماستی جزه ادراف رو تونه عمل بکنی اقلی نمیگه هم. چون احکام اقلی حتاقه عنوان مطابق نیست احکام اقلی اینا ازیاد تعلیلی هستند یعنی نقطه شو باید روزه و مطابق، برگرده به روزوم استقامت، تقرد آیا تنعجوز برنامه‌ریزی در خصوص استکمال؟ من می‌خوام بگم تنعجوز محدودیت حق نیست یک کلمه و به خیلی خوب اما حق برای استکمال چه راهی وجود داره که این رو درکش کنه یا یا مسئله محتوا اینا حق هر